بهترین را برای اینکه چگونه پای بند نماز باشیم باید به سمرات نماز فکر بکنیم این ترغیبه ها فضائلی که بیدن چگونه نماز چه سمراتی داره اگر نماز نخونه چه اواقیب سراغ ما می آین سر خطرناکن اواقیبی که سراغ ما اون اواقیب جهنم هست در نظر اکثر علماء کسی تارک میگن به بی کوف بیرسه بین علامات کفر بین مسلمانها و کافر نوازی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی جهاد میکردند برای حمله کردن به مراتع کفار تا اذان سر میکرد اگر از اذان نمی رسید این علامت کفرونه هاو ها حمله کردن پس نماز علامت چی علامت کفر اسلام هست بعضی از علما معتقدن کافر میشه اکثر می کافر نمیشه اما بعضی میگوند کافر میشه تارک نماز پس وقتی این چنین منابسته بزرگی هست و بعض نه جهنم اولین عملی که روز قیامه از انسانها پرسیده میشه نماز هست اگه نماز درست انجام داد درست انجام داد و اونجا پذیرفت شد آمال بعدی با الله رب العالم میپذیرن نماز شد بر رد شد با عمل خود به خود نگه ردن پس میار قبولی عمل نماز هست نمازو درست انجام بدهیم و بعد این از که پایبند باشیم محتری را با نیکال صالحان هم مجلس باشیم این مجالس ما تحسیل گذارم باقی هم راه بشیم رفقا ما کی باشیم در چنو مجالس شرکت بکنیم اگر جاها اشتماع بریم قطعا نتایج منفی بی بینیم با نیکال صالحین هم را باشیم از اونها اطر خوبی رو بی, بی با اونها هم را باشیم اصطرات منفی از انس اگر هم من تارک نماز شدیم اول در خوبی ها فکر کنیم بعد جریمه کنی خود را بر فکر کنی، جریمه کنیم چرا نمازو نخونده نا ناراحت باشه خدا متعال مطال کمیت میکنه